ب نام خدا صحبت این بار ما درباره سینما هست اینکه ماهیت و ذات سینما چیست از کجا آمده و با انسان امروز چه میکنه و چه آثاری بر تمدن جدید و انسان مدرن بر جای گذاشته و نهایتا به کجا داره میره؟ از اونجایی که این بحثی بسیار بسیط و متنوع است، سلماً صدها سوال رو میتونه به همراه داشته باشه یکی از جنجادی ترین و پیچری ترین مباحث قلم فرهنگ در این درهای اخیر بوده و همه جنبه هاش نمیشه رسید حدیقت اساسی ترین و خصاص ترین جنبه ها رو مصرح می تا حدود بیش نگاهی داشته باشیم. از این دیدگاه سوالهایی که وجود داره می‌تونید به ترتیب نها کنیم. خیلی ممنونم استاد. من سوال اولم این هست که لطفاً ریشه های فرهنگی و فکری که در طول تاریخ به سینما منجر شد رو توضیح بدید و اینکه چرا بشر به سمت بازیگری و نقش گشته شد البته تصور خود من از این مسئله این هست که بشر به میزانی که از واقعیت وجودی خودش گریزانتر و تر شد بازیگری و انجام نقش در اون تبدیل به امری حیاتی شد در واقع باید گفت که بشر هیچ وقت نخواست که خودش رو و واقعیت وجودی خودش رو تغییر بده اون هم به واسطه تکبری بود که روز به روز در میشه گفت سه تاریخ افصون تر شد اما زشتی که در وجود بشر بود هیچ وقت از بین نرفت چون برای از بین این رفتن این زشتی ها ابتدا باید بشر آن رو میپذیرفت اما تکبر بشر اجازه این پذیرش رو به اون نمیداد ما میدونیم که همیشه تکبر برخواسته از ذهن بشر هستش بشر در آگاهی خودش متکبر بود اما در درون خودش به واسطه گناهان و خطاهایی که میکرد در واقع دل خودش رو مبدر به دلی شقی و سنگ کرده بود دلی که از همه چیز کینه داشت نسبت به همه چیز انزجار داشت و خب طبیعتاً این شقی بودن و این زشتی درونی اون رو واداشت که دست به فریب شدیدتری تری بزنی تا این همه شقاوت و کینه رو در خودش مشاهده نکنه و این نیاز برای نقش و بازی در بشر روز به روز زیادتر شد به واسطه زیاد شدن این زشتی ها. و نپذیرفتن بشر برای درده بال این زشتی من از شما خواهش میکنم که در مورد این مسئله بیشتر توضیح بدید موجه که میشه انسان رو به عنوان یک جاندار به عنوان کیبان از این چشم یک تعریف کاملا جدیدی و آن انسان با عنوان یک حیوان ریاکار و متظاهر به آن چیزی که نیست و می‌خواهد باشد ولی نیست انسان با عنوان حیوانی ریاکار از منظر سینما سینمایی ترین تعریفی باشه که میشه برای انسان ادرقدر مدرن که تمام حیات و استیش تماما سینمایی شده ارائه داد انسان به عنوان ایوان ریاکار ولی خب این مسلم که ریاکاری در قرن جدید و در عصد سینما پیدا نشده بلکه در عصد سینما تونسته تماما محقق بشه و به قایت های خودش برسه حضیر داد میشه گفتش که این طب ریاکاری انسان در اثر پیدایش سینما تونسته قداست حتی پیدا کنه عظمت و افسونگری و قداستی که جدیدن برای سینما پیدا شده در واقع واسطه گفت حاصل همین امره. قداست ریاکاری عظمت ریاکاری انسان خب حلال تاریخی و مدید روش فکری و فرهنگی و نفسانی سینما چی هست؟ خب که اساس سینما تاثر بوده در این تردید نیست و تاثر تاریخی چند ساله بر روی زمین داره ولی تاثری حرفی شده و منسجم آنگونه که امروزه ما میشناسیم تا اونجا که تاریخ ثبت کرده در تمدن جدید جهان که این تمدن تقریبا دو هزار ساله هست بنیادهاش رو ما در یونان باستان مییابیم یونان هزاره قبل از میلاد مسیح ارصه پیدایش تعاتری هست که امروزه همچنان خودش رو نشون میده و حضور داره و فعال هست و تعاتر مدرن تماما از تاثیر یونان باستان برخواسته نه اینکه تاعت در ملد دیگر نبوده در چین باستان هم بوده ولی آن نوع تاعت با آن انگیزه ها احساسات و پس زمینه های فکری و فرهنگی دیگه تربای میشه گفت بر روی زمین موجود نیست الا در مراسم های در جشنباره های نصورت یک کار نمادین به عنوان یک اثر یک عتیقه منقرض شده دیگه خودنمایی خود میکنه تئاتر مثلا سخبستان آمریکا یا آفریقاییان یا چینیها ن ولی این تاتری که امروزه بهعنوان تعاتر معروف هست که اساس سینما هست یک پدیده درصد صد یونانی مثل تقریبا همه ارکان تمدن مدرن جهان که تاروپوطی یونانی و های یونانی و آبشخور یونانی داره مثل کل تمدون قرار و دانش اروپایی که تماما ذاتی یونانی داره خب تاعتر خودش یک واژه یونانی هست تا در زبان یونانی به مفهوم خداست یعنی اله تا یعنی خدانمایی خدانمایی انسان خب نواریم بس یک هنر یک فن. در حقیقت باستی گفتش که هنر و فن و آداب خودخدایی انسانه که انسان در این قلم رو میخواد خودش رو یک الهه معرفی کنه خدایگونه معرفی کنه خوب او مطلبییهم که فرمودین راز سینما در ذات ریاکاری انسان نهفته است و سینما تجلی و برونافکنی تمامیت ریاکاری نفسانی انسان هست در این مقاله تاعت و در لغت شناسی در هرمونیتیک واجه تاش خیلی خودش رو نشون میده خب همونطور که ما میدانیم فرهنگ اینان باستان فرهنگ حاکمیت خدایان بوده حدود بیش از 100 خدا وجود داشتن در سلسله مراتب حکومت خدایان بود این نیز برخواسته از چنین فکر و فرهنگ و مذهب و آداب و اعتقاداتی بوده که در یونای باستان وجود داشته که در رحصه زوس قراره داشته و بعد آپولون و دیونیسوس و مباردی خب برای درک معرفتی تر تئاتر، به عنوان بنیاد سینما ما مجبوریم که مقبولهی به نام ریا و ریاکاری رو در انسان به ذرک کنیم چون انسان مجبوری به ریاکاری یا تظاهر هست هرچند که در قلمرو روی فرهنگ و اعتقادات اخلاقی بشر در تمام مذاهب و ملت ها از قدیم و تا به امروز ریاکاری در رحصه زشترین خسائل اخلاقی و منفیترین و منفورترین ارزش ها در نظر همه مذاهب ملل با اینکه بوده ولی با این حال بشر در شروع تاریخ مستمران ریاکارتر شده نه که از ریاکاریش کاسته تا آنجا که امروزه این ریاکاری تبدیل به یک هنر و صنعت و دانشی شده به اسم سینما که حتی کوسه انالحق میزنه و سعی کرده که و سعی میکنه که به جای مذهب بنشینه و حتی اخلاق و فرهنگ و قداست های خاص خودش رو بیافرینه و آلترناتیوی اخلاقیات و مذاهب و حتی عرفان باشه خب این خودش من من مهمترین نکته در شناخت ذات سینماست که چرا سینما اینکه مقدس شده همونطور که ریاکاری برای بشر مقدس نبوده در قلمرو رو ادعاهای فرهنگی ولی اجتنام نافذیر بوده اینکه خب و پس میبینیم که ترین و منطورترین هردش اخلاقی در انسان که اما ریا بوده ریا این دروغ دیگه در هنر و سناده سینما تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده که کوتنه درخ می زنه و مقدس هم داره میشه و همه افراد و گروه ها و ملت ها رو تحت افسون خودش درو و امروزه داره فرمانروایی فرمان روایی داره خب در گزر تاریخی ما میبینیم که یونان باستان که سرزمین پیدایش تعاتر حرفهای بوده در اینهال این یونان باستان قانون خیزش نخستین فلسفه های علمی و مادی نیز بوده و همچنین سرزمین خیزش آن چیزی بوده که امروز دموکراسی هم نابیده میشه از تاریخی و های تاریخی ما میبینیم که دو سقرن خاصی وجود داشته که حدود قرن پنجم شیشم و هفتم قبل از میلاد مسیح در یونان و مخصوصا در شهر آتن هست که در این حدود سقرن بنیاده بنیادهای فلسفه علمی و های ماتریالیستی و بنیادهای دموکراسی به همراه تئاتر این ستا با همدیگه پدید آمدند و این ارکان آن تمدنی شدند که معروف به تمدن باستانه که امروزه تمام جهان رو دربر گرفت اینکه این سه رکن این تمدنی که امروز جهانی شده چه ارتباطی با هم داشتند این بحث بسیار اساسی است ما قبلا هم اشاراتی در صحبتهای دیگه بش داشتیم که رابطه بین فلسفه مادی تاعت و دموکراسی این ستا با هم چه ارتباطی دارند که به همراه این ستا یک انصور دیگه رو همیشه اضافه کرد چه با اثار به جای سرک چهار رکن حتی میشه قرار داد و اون نظامیگری و تسلیحات بوده ما میدانیم که نخستین شهرهای مدنی به سبک امروز در یونان پدید آمدن که نخستینش خود شهر آتن بوده که پای تخت بوده که این شهرها متروپولیس نامیده میشدند میتروپولیس یعنی در واقع شهر نظامی از که پلیس مفهوم نظام میگری هست اکروپولیس متروپولیس یا پرسپولیس در خود ایران به از اون شهرهای یونانی بوده که تخت جمسیر رو پرسپولیس میگفتند نظامیگری و فلسفه مادی که در قرن چهارم قبل از میلاد یک نهزتی پدید آمد چهاروپنجم قبل از میلاد تعت عنوان حکمت العایی که بر علیه این تمدنی که در آنجا داشت رخ میداد قیام کرد که کل این مکتب العا سرکوب و منهدم شد که آخرین نفرش سغرات حکیم بود که به قتل رسید و از سغرات حکین به این طرف درب میشو گفت آن تمدن دیگه در تاریخ کاملا غالب شد بعد از ظهور مسیح هم این تمدن مسیحیت را از معتبا خالی کرد و حتی کرد. از خود مسیحیت یک سوجهٔ بسیار عظیم و فریبنده تئاتری پدید بیاره در عنوان و هنر مسیحی کتاب بوده ادامه داره که در واقع فقط از اسم و لباس مسیحیت استفاده شده متوا همان فکر و فرهنگ یونانی هستش که همان احساس و نمایش خود خدایی باشه در سایر جنبه های هنر یونان باستان نیز این خود خودخدایی و تاخت دیده میشه ما میدونیم شهر آتن شهر مجسمه های قریان بود شهر الهه ها و خدایانی بود که پرستیده میشدن و انسان ها به پایش حتی قربانی میشدن و سر بریده شدند. در واقع می گفت تمدنی بر اساس بتپرستی به مفهوم واضحه گلدن مجسمه خدایان فقط در قالب مجسمه ها بودند که پرستیده میشدند شدند. هکل ونوس دیونسوس و آپولون اینا مجسمه داشتند داشتن که پرستیده میشدند و به پاش قربانی میشد خدایان بود ها بودند واقعیت اینا خب ارتباط در این ارکان بحث این بحث امروز ما نیست ما اون شده تاعتری رو میگیریم و خیلی سریم می به عصر جدید که از چه پیدایش سینما هست یک اشاره دیگهی لازمه که ما بتونیم که ادبیات داستانی نیز از اساس درجه اول پیدایش و نیز رشد تاعتر تا به امروز بوده و هست و سینما بدون این عدبه داستانی هرگز نمیتونست تبدیل به یک مذهب بشه که امروز شده خب ببینید نخستین سخنگو یه خدایان در یونان باستان خب ما میدونیم که کسی به نام هومر بود در قرن حدود هشت قبل از میلاد مسیح اندکی بعد از او حسید بود که تبا شناسی خدایان را میبشت خدایان را یکی معرفی کرد تئاتر ریونان باستان اساساً بر این دوتا اثر این دوتا بزرگترین سخنگوی حماسی تمدن غرب بنا شده این دو نفر و تمام سوجه ها ها و انگیزه های یه یونان از آثار این دو فرد مسکول برخواسته بعد از این دو اندهگی حدود یکی دو قرن بعد از این دو کسی به نام صفوکولوس یا صفوکول پیدا شد که او را دیگه به راستی پیغمبر تئاتر و نماش نام جدی تمدن غرب میدونند تا به امروز نیز آثارش تبدیل و تفسیر میشه و همچنان اجرا میشه در تاعترا و همچنین در سینما او توانست فرهنگ یونان باستان رو تبدیل به حماسه های بشری بکنه. نان هویت خدایان رو بر روی زمین در حیبت های بشری و افسانه های بشری و تراژدی های بشری پیاده بکنه. بعد از او کسانی که بزرگترین خدمت رو به صلاح به تعسی کردند که امروزه همچنان از ارکان ادبیات سینمایی حس میشه، بعد از خمر هسیود و سوفوکل شکسپیر بوده مشهورترینشون سرینشون که دیگه از متأخرین هست و بعد از او گوته آلمانی بوده و هتا به امروز خب پس تاعت منعای خودخدایی این معنا کاملا واضح هست این خودخدایی لزوما به این معنا نیست که یک بازیگر بستن اتعاط بگه من خدا هستم اون روستی ببینید خود پایدار پایدارترین و اساسیترین بنیاد تاثر بوده در سینما هم جدیترین بخش سینما هست کومیدی هم بوده آن طرف سکه تراژدی که در همون قرون اولیه قبل از میلاد مسیح کسی به اسم سوفانس نیست از پدران ادبیات کومیدی هست از پدران بزرگ ادبیات تنز هست یا ادبیات ساتیر بقل معروف که بر ظاهر در نقطه مقابل تراژدی قرار داره ولی مکمل هم دیگه هستند خب تراژدی یعنی چی؟ اگر تراژدی و کومیدی دو پای دو روح دو انگیزه و ذات تاعت و دزا سینما بودند و همچنان هستند ما باید درک کنیم که تراژدی و کومیدی ریشهاش در انسان بر روی زمین چیه خب تراژدی واضح یعنی ناکامی انسان در جهان این از یک لحاظ در باستان به این معنا بوده که خدایانند که در عالم خاک ناکام میشن و بیان دیگر انسان ها خدایان هستند انسان همان خدایی است که در عالم خاک قادر به فرمان روایی نیست و ناکام میشه و شکست میخوره. به زبان بسیار ساده عدبیر تراژیک بیانگره چنین وضعیتی هستند. انسانی که ذاتا خداست ولی عصیر در خاکه و زداد ناکام میشه. این بنیاد تلاجیکیه. کومیدی الله تاریخی هم باید از تراجدی پدید اومده همواره همینطور بوده از پس یک تراژدی پرداز بزرگ ده ها های پدید اومدن چرا؟ اینها اومدن این شکست و ناکامی انسان در جهان را یا شکست در بقیه خدایان را در عالم خاک یک مقداری تلکیف کنند و قابل تحمل کنند در حقیقت این کمدی اومده با قول معروف به ریشه این خدایان خندیده و بیان دیگر این کمدی اومده تراژدی رو مسخره کرده از یک لحاظ کمدی این یعنی مسخره کردن ای تراژدی یعنی مالی تراژدی رو شکسته یعنی در واقع به این شکست خندیده از این لحاظ میشه گفت لازم روانی این شکست رو التیام بخشیده و بیان دیگر به انسان در کمک کرده که بتونه همچنان به بقای خودش ادامه بده همونطور که در هر اعتقادی بشر همواره خنده و گریه دو صورت از زندگی بشره و این دو بدون همدیگه نمیتونند باشند همیشه با قلعه معروف از پس هر خندهی یک گریه است، از پس هر گریهی باز خنده هست یعنی هر شکستی یک پیروزی و هر پیروزی باز به شکستی منجر میشه درک تراجدی و کمیدی هم اینجوری مزموسته برایم خوب برگردیم به معنای ذات ریاکاری انسان پس انسان اللهزی معارف دینیهم درسته دارای روح خداست دارای ذات علهی است ولی اسیر در خاکه پس تماما زندگیش چیزی جز تراژدی و ناکامی و یعس و پوچی و تباهی در عآلم خاک چیزی دیگری نیست ولی این انسان میخواد این شکست و ناکامی و پوچیو هماغت خودش رو کتمان کنه مخفی کنه انکار کنه این همون ریاض ریاکاری یعنی بگه که دخیر من امتنان خدا هستم درسته که عملم درسته که زشتم درسته که خطا خطاکارم درسته که شکست میخورم و محکوم به هستم ولی من با همین ها من خدا هستم من جاودانه هستم و من شکست ناپذیرم این رازی ریاکاری اصلا در قدم روی حیات روزمزه و واقعیه خب پس در واقعی میشه گفت در این حال این ریا خود بر یک واقعیتی استواره، یک واقعیتی اجتناب نپذیر برای همینه مثلا افلاطون که درست در سر گردنه آغاز شگوفایی تمدن یونان و رویارویی تمدن یونان با مسیحیت پیدا شد دور قبل از این واقعه او تراژدی و ادبیات تراجیدی رو یک تعریفی میکنه که تا به ایمروز امیقترین تعریفیه که در دانشگاه ها مورد بحث و تفسیر افساتون میگه که تراژدی سانسور واقعیت هست سانسور کردن واقعیت و هیچکس تعریف دقیق تر از او تا حالا نوس کن یعنکه ادبیات تراژدی بیان واقعیت نیست بلکه سانسور بابریت است خوب این یک بحث بسیار اساسی است خوب چی ما وقتی فیلم المثل ادبیات تراژیک این بزرگان ادبیات رو وقتی نظر قرار بدیم ما میدینیم که واقعا همینطوره فیالمثل خود سفو دو دوتا از معروفترین آثارش انتیگون و ادیبشاه هستش خو این حماسه آفرین ها، این قهرمان، این داستان، خب ما میبینیم، این واقعی نیستند هر عقلی درک میکنه که تشابهاتی به واقعیت ها داره ولی اصلا واقعیت نداره حالا اون قدم روی هماسته های و اسطورهای بوده ولی حتی به ادبیات رئالیستی قرون اخیرم که میاین تراجدی های تر مثل آثار داستایوسکی، مثل فررسکن تولستوی فررس یا قبل از هم شکسپیر هاوی ها, ها اینا دیگه استری به صورت صورتت نمیکنن کردند کردن ترراژیدی و ادبیات رو به واقعیت ها برسانند مدعی ادبیات رالیستی هستند حتی در رولیستی این تراژدی ها هم می بینیم اگر درلی دقت کنیم می بینیم قرمانان اینها این در این بینهایت با واقعیت شبیم ولی انسان اگر اندکی دقت کنیم این تا چند دی سانسور شدن اینا. نه شخصیت های واقعی نیستند پس این تراجدی ها و این شکست هم، هم آنگونه ها تصویر میکنند واقعا نیست این هم به مفهوم نظر افلاتونه که میگه تراژدی سامسور واقعیت ولی خود من به نظر من افلاتون شاید خیلی خوشبینانتر ترخواست به ادبیات برخورد کنه که گفت سامسور واقعیت اگر دقت کنیم ما میبینیم که تراژدی ها نه تراجدی ها واقعیت. در سوی تاریخ این تراژ و این ادبیات داستانی اتباقا هر سعی کردن که راژیک تر میشن واقعیت رو ووااج تر تر که هرچی که از استروپردازی اومدن پایین در از آسمان آدم به زمین و خواستن واقعیت این انسان رو در نشون بدن هرچی که ظاهرا سوژه هاشون واقعی شده محتوا غیر واقعی و خلاف واقعیت شده برای همین مثلا یک نابغه ادبیات مثل تولستوی که او را از پدران و پیامبران ادبیات مدرن و رئالیستی میدونند خودش در آخر عمرش با تلخی اعتراف میکنه که به نظر من ادبیات عمقات و با عظمت این بشریت ادبیات داستان همپای او یکمی کمی کسی قبل از به نام گوته که اون نیز از پدران ادبیات مدرن و نمایشنامه نویسی مدرن و ادبیات تراژیک هست که از سر فارس مالیشون هست نیز در اواخر عمرش اعترافی مشابه همی داره یکی که ادبیات داستانی و رومانی که بزرگترین کارگاههای فریب ها هستند حتی یک داره که دا این تعریفش درستی و نادرستی شاید مهم نیست ولی منظور انگیزش و نگاهش به ادبیات رو نشون میده میگه که در قدم روی داستانی اموات موردگان و بلکه اجنه و شیاطین هم که بر اون نویسنده وارد میشن و سعی میکنند که از آدم مرگ و پنیستی خودشون رو به دنیا بیارن یک بار دیگر نه به این معنا که واقعیت خودشون رو معرفی کنند بلکه زندگان رو فریب بدند خب این خیلی حرفه اونا که ادبیات رو این واقعیت میگیرند ادبیات رو ظرف ظهور حقیقت انسان میگیرند و ادبیات پرستی ماخوزن داستان و رمان پرستی پیش آوردن باعث شدن انگی این ادبیات مدرن اعتقادشون در اواخر عمرشون به کمال فکر که می رسیدن نظرشون این بود که ادبیات کلام روی اشد خریب انسان خاص نه هدایت انسان به سوی واقعیت و حقیقت خب ما میدونیم که مشهورترین و ماندگارترین آثار سینمایی اینگرن بر اساس این تراجدی ها و این ادبیات داستانی این پیانبران ادبیات قرار پدید اومده اینها جدیترین و به استلا و مثبتترین جنبه استفاده سینما از ادبیات است تا اینجا ما طبعا نگاه اجمالی به کل تاریخ ادبیات و زمینه ادبیات در سینما و تعاتر داشتیم حالا بحث در این زمینه بسیار زیاده یبحث واگزار میکنیم در جاهای دیگری بپردازیم به سینما که موضوع اصلی صحبت ماست سال دیگری دارید میتونید بفرد ممنونم از توضیحاتتون شما فرمودین که افلاتون خیلی خوشبینانه به تراژدی نگاه کرد و از نظر شما تراژدی با اجبون سالاریست اما در این حال ما میدونیم که ریاکاری بشر یک واقعیته که همطور که گفتین برخواسته از ناکامی بشر در خاک است و تراژدی هم برخواسته از همین ناکامی بود که ایجاد شد اما اگر شما تراژدی رو واشمنون سالاری میدونید به این معناست، آیا به این معناست که شما واقعیت ناکامی بشر رو در خاک قبول نداریم؟ لطفا این رو بیشتر توضیح بدید. حال که من میخواستم مطرح کنم این هست که کلا نقش که بشر در طول تاریخ بازی کرده آیا از یک قانون خاصی پیروی میکنه؟ مثلا نقشهای تراژیک هماسی عاشقانه کومیک و یا غیره اینها در یک روند خاصی بوده یا اینکه در هر زمان اینها همه با هم اجرا شده و غیر از این مطلب دیگه که من میخواستم صحبت بکنم اینه که خب ما میدونیم همیشه بشر در تمام تلاشهایی که در همه جوانب داشته یکی از مهمترین مسائلش میل به جاودانگی بوده خب به نظر میرسه که تاتر و نقشافرینی که به طور زنده در گذشته انجام شده نتونست میل به جاودانگی بشر رو ارضا بکنه و به همین دلیل بشر دست به اختراع ابزاری زد تا بتونه خودش رو جاودانه بکنه و اون هم عکس بود و عکاسی و از این بابت میشه گفت که تفاوت سینما و تاتر به نوعی از همینجا شروع میشه که خب تئاتر به دلیل اینکه یک بازی زنده است کمتر امکان فریب رو برای بشر ایجاد میکنه. اما سینما به واسطه تکنولوژی که در اختیار داره میتونه این فریب رو به کمال برسونه و در این حال بشر رو جابدانه هم بکنه لطف کنید شما این توضیح رو بدید که اصلا چطور این تفاوت در سری تاریخ ایجاد شد بین تئاتر و سینما و تا جایی که ما واقعا امروز میبینیم که تئاتر در حال انقرازه و حتی کسانی که در تئاتر بازی میکردند دیگه همه سینمایی شدند و تات جذابیتی واقعا برای عامه مردم نداره و امه مردم همه عاشق سینما هستند چه اناسوری در سینما وجود داشت که تات رو از بین برد و همه رو سینمایی کرد ممنون میشم توضیح بفرد متشکرم. خب ببینید مسئلهی این از قول از افضاعتون اون که تراژدی رو سانطور واقعیت من گفتم به نظر من اصلا بنیاد و ساختن واقعیته این چند, این, بس و چند این, این چند تا مثال میزنیم این بحث بسیار اساسی و وسیع هست چند تا مثال میزنیم بعد شاید این بحث معروف به سینما رو که کنه که چند تا از شخصیت های داستانی معروف تاریخ جدید ادبیات داستانی رو مثال می‌زنیم. مثلا نگاه کنیم یکی از تراجیدی فاست از سر گوته یکی از بزرگترین آثار ادبی یه تمدن غهب است ببینید خود همین آقای فاست که قهرمان این نمایش هست که در سینما هم بارها اجرا شده این چه شخصیت کذایی و غیرواقعی داره این فاست در این حال یک فیلسوف یک حکیم یا فرزانه یک انسانی است. بسیار عمیق یک عالمی است کامل در این حال دنبال جادو و جنبل و دستگیری اجنه و شیاطین و این مسائل و میخواست شا بشه و دنبال و گنجهای عجیب غریب میگرده ببینید همچین شخصیت این شکلی بهعنوان هرگز در تاریخ نبوده و نمیتونه باشه یک انسان حکیم هرگز نمیتونه همچین انسان مالیخولیایی و و مسقلی باشه که روی خودش رو به ابلیس بفروشه فروشه ببینید این حالا مثال دیگه میزنیم خب شکسپیر نیز از خدایان ادبیات داستانی است که در سینما نقشی بسیار حیاتی ایفا کرده در تئاتر و پس سینما بزرگترین شاکار شکسپیر خودش هاملتشه بین خود این هاملت که اکثر دیدن این اجرا رو خوب ببین چه شخصیت خلاف واقعیه. در این حال این شخص بسیار عاشقپیش، بسیار خردمند، عاقل عادل، متدین و مؤمن در این حال یه آدمی است مادیخولیایی، ابله، ماجراجو و یک روانیست داریم و چطور این اردشها یک جا جداری آدمی میتونه باشه؟ اینکه میگم چطور میتونه باشه؟ هی، فی الواقع هرگز همچین انسانی نمیتونه وجود داشته باشه و وجود هم نداره. ببینید قیل واقعی بودن رو مالی خودیایی بودن رو و مسخ واقعیت ها و مسخ اردشه های حقیقی انسان رو ببینید مسئله بینهایت قابل آن آنا یکی از شاکارهای بجسته شخصیتی است که تولستوی ابدا کرده بارها هم اجرا شده در سینما خب ببینید این چه اثری دروغی نیست درمید. این شخصیت این زن یک عاشق منظر من میرسه و بعد یه داره یه شوهری هم داره اون محشوق انسانی بسیار حکیم و خردمند و انسان درستکاری است در این حال انسان توکر و خاینی عذاب دار میاد یه خانم عاشق آخر سری خودکشی میکنه ببینید درمید. چگونه فسق به جای عشق جازده شده درمید. چگونه دقر کاری و رندی به جای حکمت و خردمندی جازده شده من نشون میده که انسان ناکام انسان عاشق انسانی که بس خودکشی کنه این مفاهیم نگاه کنید حالا آثار امیختار و جدیتر، ببین اینا ادبیات رئالیستی تازه و ادبیات اسطوره‌ای نمی‌دونیم آثار سوفوکلون و هومر رو نمیگیم که اساساً اساتیر هستن و خدایان و آسمانی و نیمه بشر نیمه خدایان اینا دیگه ادبیات رئالیز پدران رئالیسم در ادبیات هستند راسکولنیکوف یکی از قهرمانان اثر زاستویفسکی دستو. خب. این یک جوانی از یه لازم نابغه عاشق عدالت و در این حال یه بیمار روانیس مقرصدیه هم جنایت میکنه ببینید یه همچین شخصیتی واقعیت نمیتون داشته باشه نداره. این مزق واقعیت ها بردش ها هستش مختوش کردن واقعیت ها هستش حالا بقید آثارهای قربی رو مثال نزنیم ادبیات داستانی زاستانی خودمون رو مثال بزنه اینا یکی ای شانامه خودمون از افتخارات ادبیات ما حساب میشه همین رستم داستان نگاه کنی چه شخصیت خلاف واقعه البته خود فروسی میگه که این رستمی که من ساختم یک داستانه یک پلبانی در سیستان بود ما اومدیم این رو دبیر به داستانش کردیم مغلور حالا حکمتهایی که داریم این آثار هست بماند ولی چه کسی سراغ حکمتهایی نرفته نرفته هرگه هیچ کس نرفته. خد رستم در ین حال چه شخصیت مختوش و خلاف واقعیه در ین یک پهلوانی وارسته خردمند عاشق عدالت ترفتار منافع خلق دشمن شاهان جبار در ین یک دائم الخمر و نهایتا یک زناکار و خلافکار خب ببینید اینها واقعیت نمیتونه داشته باشد واقعیت ندارد نمسخ حقایق و عردشان است. این که من میگم واجبون سالاری هست نواقعیت این, این بحث رو جای بیش از این نیست که در این چارچوب مورد ملاحظه قرار بدیم به سوال بعدی شما بفردازیم خب ببینید که ما گفتیم انه این نمایش خود خدایی اصفاد خدایی،, خدایی خیش خب گفتیم دو رو داره تراجدی و کومیدی ژدی در واقع میشه صورت خود خدایی به میزانی که این خود خدایی ناکام میشه از توش کمدی در میاد کمدی چیست خود مسخرگی، پس خود مسخرگی محصول طبیعی خود خدایی است همین دوتا تا باجر ما میتونیم در رو کل ادبیات داستانی گرفته تا تا تا سینما بگیشونیم و ببینیم این دو تا ماسک که سمبول تئاتر یکی داره میگریه یکی داره میخنده این بیان همینه این بیان این واقعیت دروغینه که تاس پرداخته ادبیت داستانیم هم پشبانش بودن سینما رو به اوج رسونده شما گفتید که خب تراژدی یک واقعیت چطور تراژدی سانسور واقعیت یا تراژدی بارجبون کردن واقعیت نه خیر ببینید انسان به میزانی که انسان بودن خودش رو، یعنی مخلوق بودن خودش رو منکر در مقابل خدا یعنی در واقع خالق رو منکر و خودش مخاد خدا باشه و خالقه منکر باشه دچار چنین جنونی میشه دوچار این ناکامی ها و تراجدی ها میشه که از بدتن این تراجدی ها خود مسخره ها در میاد ببینید انسان یک است که خدا نیست انسان خدا نیست حامل یک نور و روح الهی هست که باعثی به خ تصدیق خدا، شناخت خدا و پرستش خدا نه است طریقه انکار خدا انکار خدا است که انسان رو موجودی تراجیک و نایتا خودمسخره مسخره میکنه. حق فکر کنم همین حد بیشتر از این دیگه بحث دینی میشه. دیگه جاش نیست بیشتر از این توضیح بدین یعنی در این دروغ خودش ناکام میشه. شه بله دقیقا در کفرش ناکام می دروغ دیگه بله انسان در کفرش یا سیمای تراجیک داره یا کومیت. یا احساس خوده یک کاذب در مجبور میشه خودش مسخره کنه این خود مسخره به واقعیت این کور نزدیکتره این خود مسخره گی ببین ما این معنا رو در قران هم داریم یاران هایی که با رسولان میجنگن کافران خدا رو منکرند. و رسولان رو مسخره میکنن که خدایی که شما میگی آقا دروغه اینا ناخواسته خود خود رو مسخره خواند کرد استهزا خواند کرد ببین این خود مسخره به همین خب ببینید ما میگیم بعضی مطلب رو به قرآن برگردونیم. گرچه بحثی که ظاهراً رفت نداره ولی ما در قرآن همیشه میتونیم حتی ابتذال‌ها و های بشر رو در قرآن ما میتونیم نسبت پیشگویی و پیشبینی درک کنیم. تو این قرآن میگه که حیات دنیا برای کافران تماماً له و است و بازی و بازیگری و ورشیکی است. ببینید بازیگری و ورشیکی خب ما اینو در تاریخی فرخنگ های کافرانه که یونان باستان یکی از مشهورترین و بدطرحسان‌ترین کفرها بوده و تا به امروز جاری در اما با که امروز جهانی شده ما اینو در تئاتر که یک سمتش تراژدی یک سمتش کمدیه دو نوع بازی اه؟ یه بازی جدی یه بازی شوخی یه شوخی بازی کاملا میتونیم کتاب تا امروزه به سینما رسیده و سینما شده روح و روان و فرهنگ و مذهب بشر امروز رو درگام برگام در واقع میشه گفت تشک فرهنگ امروز بشر زفر تاریخ فرهنگ بشر کافر بازیگری و بازیچگیست که این کفر یعنی لعب, لعب در آدم سینما دیگه تعین و تجسم کامل پیدا کرده به عنوان مذهب سینما و این عامل جاذبیت سینما بله در واقع ما تمامیت کف رو در سینما میتونیم تجسم و تعینش رو امروز درک کنیم یعنی اصالت لعب و لعب که انسان خود و هیکل و هویت و وجود خودش رو مسخره میکنه و باهاش بازی میکنه سینما اینو بازیگری مگه نه سینما یعنی بازیگری اصلا این اسممون میشه بازی ها هنر واسنتی بازی که بازیه بازیی که الان شده خودش جدی و خودش شده تماماً سرنوشت انسان و روح و روان انسان و باور انسان شده و انسان در این بازی دیگه گم شده در بازی خودش گم شده سوال بعدی شما تفاوت بین تئاتر و سینما بود که چرا سینما این جذابیت و افسونگریش از چه بابته که حتی در داره منقرز میکنه خودتون بخشی توضیح دادید این در تئاتر هنوز انسان واقعی بر روی یک صحنه واقعی در مقابل بیرندگان واقعی داره نقش میکنه پس هنوز یه واقعیتی وجود داره. اون انسان که در نقش بازی مهمونه خودش واقعیه. بنابراین هنوز اون ریا و اون نمایش خود خدای خود مسخرهگی اینقدر به تمام و کمال نمیتونه عدا بشه. در سینما تکنولوژی وجود داره. ها؟ که انسان تا اونجایی که دلش میخواد میتونه واقعیت رو وارونه کنه و بازی تمام عیار و کاملی رای بده و واقعیت رو به کلی نابود کنه. تکنولوژی که در سینما هست، ما این موضوع که لاتیفترین و تکنولوژی تکنولوژی‌ها در خدمات سینماست. یکی از کاملترین تکنولوژی‌ها سالن سینما و کلن رسانه رسانه‌های تصویری ما سینما که می‌بینیم، تلویزیون، کل موارد همه اینا در این مجموعه می‌گیره. منظورمون از سینما، آنچه که فقط در سالن‌هایی سوندای سینما نمایش داده می‌شد، نیست. کل رسانه‌ی رسانه تصویری ما، دوباره منظور ما سینما رسانه تصویری است. ببینید بینید هایی که میشه، منتاش هایی که میشه، انسان میتونه تا اونجایی که ممکنه واقعیت رو نابود کنه، تا اونجایی که دیگه باستفاده از انیمیشن و کامپیوترها و جلوه های ویژه سینمایی و کامپیوتری، برای همین این مزه دیگه امکان داره سینما با سمت انیمیشن داره میره دیگه سینما دیگه داره انیمیشن محض میشه دیگه دروغ مهذب انسان نیازی نیست که از بازی کنندهش فیلم برداری بشه دیگه ب این بشر به اون سمت داره میره این دیگه جنون و مالیکولیای محض صحنهای رو میآفرینه با نقاشی و این رو عین واقعیت برای خودش جلوه میده و خودش در این واقعیت گم و نابود میشه میره و خودش رو با این واقعیت دروغین سینمایی و انیمییشنی اشتباه میگیره در واقع سینما میشه خلیفه انسان واقعی میشه